And turn up the speakers. Cafe Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio. Radio! این هفته مهمان برنامه پاتوق علی دلزنده روی هستش دوست عزیزمون از ایران ایشون مدیر و مؤسسه گروه فرهنگی افتستا و همینطور گروه هنری دلان فشن اگر اشتباه نکنم و درست بگم هستن سلام میکنم بهشون سلام میخوام به شما از جان و برنامه. تون شما هست؟ ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین خیلی متشکرم علی جان اولین سوالی که ما اصولا از همه میپرسیم هر کس که مهمان برنامه ما هست اینه که با... علی دلزنده روی متولد کجاست بزرگ شده کجاست و اگر دوست دارید به ما بگید که چند سالتون هست خایشم من متولد شیرازم بزرگ شده شیراز هستم و سی و چند سال به حال دارم بله خیلی هم خوب متولد شهر شعر و موسیقی و هنر مگه میشه آدم متولد شهر باشه پیش. و اهل هنر نباشه خایشم ام... علی جامن من نخستین بار با شما به خاطر کارهای گرافیکی و به خصوص تصویرسازی هایی که انجام میدادی آشنا شدم و میخوام ببینم که آیا در حال حاضر هم مثل گذشته در این عرصه فعالیت داری یا نه از من شما که آره همچنان کاره گرافیکی رو دارم اما بیش از پیش از سایت و کالیگرافی برای خلق آثار جدیدم هم, هم رو و بیشتر به تراریه های دکراتی رو آوردم در ارتباط به اون تصویر سری هم باید بگم که قبلا... دوره‌ها 2 تا 4 تا کار تاثیر سادی توی تکنیک‌های فوتو مانیپولیشن و دارکارت کار کردن ولی به دلایلی دیگه اون کارها رو ادامه نمیدم. دلایلش قابل ذکر هست یا نه؟ نه. خب. خیلی هم خوب. ما مزوریت داریم دیگه نمیشه که دوره قابل پذیرش هر سخنی که شما بگین. اصلاً اذیتتون نمی‌کنیم. اما سوال بعدی که ازت دارم اینه که خب شما مؤسس و مدیر گروه هنری افتستا هستی از چه زمانی این گروه شکل گرفت و هدف از تشکیل این گروه چی بود؟ ببینید سال 1384 بود که ایده ایجاد گروه هنری برای بست روابط بهتر و بیشتر بین هنرمالی کشور و تخص هنرمندون که کارهای بسیار قابل خوبی داشتن اما شناخته شده نبودن یا فرضشون جور نبود که شناخته شده بشن گروه هنری اون موقع ایداش شکل گرفت و اتفاق افتاد و تا الان هم احتمال خوشبختانه فعالیتش خوش همچنان ادامه داره خب زمینه فعالیتتون تو میتونم میدونم که اول کارهای در واقع یک مؤسسه گرافیکی بوده درسته بله بله. و در سالهای اخیر های هنری بینون مللی در شاخهای مختلف برگزار کردین و در واقع میتونم بگم که برای نخستین بار هست که شما های مجازی بینون مللی هنری در ایران برگزار کردید و الان نگارخونه هم داره درسته؟ بله مجازی آنلاین درسته بعد ایده برگزاری این جشنواره ها در سطح بین المللی از کجا آمده؟ به خصوص که خب هر دومون میدونیم ایران دنیای مجازی اینقدر سرعتش کنده حالا الان یکم بهتر شده اما خب شما از چند ساله دارین در این زمینه فعالیت میکنید چطور شد که تصمیم گرفتین یه همچین کارهایی انجام بدید ببینید البته من سردم از جون بهتون بگم من در جواب شما رو به صورت خیلی مختصر میدم حالا اگر جای بسط دادن هست من بگید من سعی میکنم مختصر هر سوالی شما رو بدم در این حال اگر حالا میگید بیشتر می بیشتر بسشتاد حتما بس بگید من خدمت هستم اگر بستش بدن خیلی بهتره چه بگیرید جانم جانم میگم بفرمایید میکنم. جشوار مجازی افتستا بعد از گذشت پنج سالت گروه هنری افتستا حالا این یاد هایی که برگزار میکرد به صورت کشوری جشوار مجازی بر اساس اینکه که ما بتونیم به هنرمندهای خارج از کشور هم علاوه بر داخلی ارتباط بهتر و بیشتر و قرار بکنیم ایدش توی ذهن من به ایجاد شد و به واسطه هنرمند های متعدد و کاشناس های متعدد های خیلی خوبی که که من باشون در ارتباط بودم این ایده اجرایی شد جشنواره مجازی بین‌المللی افقستا عملا به صورت آنلاین تا اینترنتی فستیوال برگزار میکرد و از بزرگ شما که داورها از هر کجای دنیا حالا توی منزلشون بودن یا استدیوی کارشون بودن می‌تونشن به وبسایت جشنواره بشن کارهای هنرمندان و جشنواره رو به اصطلاح ببینن و به اونها رأی بدن حتی با داورهای دیگه هم فکری این جشواره به این صورت کار خودش رو به عبارتی انجام داد. من حالا چون قرار بش کدن اینم بگم تا الان بیش از پنگ هزار تا هنرمند توی به صلاح های افتستا شرکت داشتن ست و دعوبر و دبیر و کارشنات با ما همکاری داشتن که من این نقطه هم باید بگم شما لطف داشتید به ما و عنوان دبیر بینردلل جشوار های افتستا تو چند تا دوره با ما همکاری داشتیم. من هم وار هم تشکر میکن بابت همکاریش مرسی از شما در واقع کار کوچیکی بوده که از من برمیومده علی جان موردی که هست برگزاری جشنواره مجازی چه سختی هایی داشته برای شما فکر می کنم این سوال پرسید من در جوابدم می این پرسسیش ببینید قطعاً چون جشوار مجازی و آنلاین نیازمند اینترنت خوبه شون بدون اینترنت چهرا اصلا این کار انجام بده درسته. و اونها منتا به واسطه اینترنت هاشون آثارشون رو آپلود بکنن روی وبسایت ما و حالا دوباره بیان رای بدن بله خب این سری مشکلات شما داشتیم که از بهشله برگزیدین این مشکلات همون سرعت اینترنت بود که توی برهای مختلف زمانی متاسفانه سیستم اجراییمون دچار مشکل کرده بود پس ها کارهاشون رو آپلود بکنن ولی خب به خوشبختانه تجریبی انجام شد و موفقیت آمیز هم بود این توضیحاش رو نخفت می‌کنم چون به شما بدم و یه سوالی که یه مقدار خود من رو ذهنم مشغول کرده اینه که چرا سال گذشته جشنواره مجاز افتستا خیلی فعال بود چرا الان از فعالیتش کم شده این فعالیتش کم نشود یه مقدار تغییراتی که ما داریم واقعاً ما الان وبسایت هامون رو چون چند تا دامین داشتیم وبسایت هامون رو یکپارچه کردیم و حالا من علاقمندان میتونن بری اپچک افتتاح مراجعه بکنن ببینن ما یک میگه روی کارت هامون متفاوت کردیم اینه که نگاهخانه افتتاح هم به دلیل که افتتاح شد باعث شد که ما درگیر اونم داشته باشیم ولی من حالا این خبر خوبم به شما بدم که توی یک دو ماه آینده ان در اصفهان شهر شما نمایشگاه آثار برگزیده در شورای کارتون افستا با موضوع جهانی بدون مرز برگزار خواهد شد. حتماً هم خواهد بود ولی خب شما ایسلانی هستید من ترجمه میدم اول اصفهانو بگم شما چه <تصفيق> خوشحال بشین که این اتفاق ان شاءالله خواهد افتاد. مرسی ممنون و حالا نه، میریم به سمت و سوی سوال بعدی من و اینکه علی دل، دلزنده روی گرافیست طراح تایپوگراف مدیر هنری و در واقع مدیر جشواره چی میشه که به سمت طراحی زیورالات میره ببین تجربه فعالیت توی حوزه هنر، سایتوگرافی، کالیگرافی و همینطور کار کردن گرافیک اینقدر تو من اینجا کرد که بیام تایپوگرافی یا به عبارتی رو یه جوری پیوند بدن صنایی درستی و خب مد و فشن زیورالات گذینایی مناسبی بودن که برای عملی کردن این علاقه من میشد از اونا به خوبی استفاده کرد و بنابراین برندی رو پایگذاری کردن به نام دلان که حالا رفته دلان فشن این رو نامگذاری شده درست ولی دلان که کار از همون در کردن یا عرض کردن زیورالات یا حالا چیزی گذینایی مختلف مد هست ولی خب دیده هستی به خاطر اون دردقه من و اون علاقه من به کاربورد کردن گرافیک ایجاد شد و خوشبختانه به حاملی هم که درسته بازار طراحی زیبرالات میتونم بگم یکی از داخترین بازارهای هنری در حال حاضر در ایران و خیلی از افراد مخصوصاً قشر جوان علاقه مند هستن که در واقع از کارهای نوع ایده های نوع هنرمند ها که به صورت زیبرالات حالا طراحی لباس یا هر چیز دیگه ارائه میشه استفاده کنن و خیلی از هنرمند ها هم که مثلا در رشده های مثل گرافیک صنایع دستی، ترایه سنتی، درس خوندن و کار کردن الان وارد این عرصه شدن دلیل اینکه این همه علاقه از طرف همه رشدها به این عرصه هست چیه؟ ببینید، وقتی که موقعیت کار توی سطح جامعه کم بشه وضعیت اقتصادی خوب نباشه ایده های مختلف ایجادش از کارهای کوچک یا به اقتصادی استارتاتی قطعا بروز میکنه تو سالهای اخیر دلیل مشکلاتی که عنوان کردم کسب و کارهای کوچیک یا بهباتی خانگی ایجاد شدن که این نکته مهم وقته من لازم هست بگم تفاوت عمدهای وجود داره بین کسبو کار و پروفسونال و آماتور درسته. اون همین است هست که کسبو های آماتور از این جهت که تخصصی به کار نگاه نمیکنند و کیفیت بسیار بالا یا اون کنترل کیفیت توشون وجود نداره قبوجینه های متعددی دیگه قطعا بهش داده نمیشن از کارهای حرفه و تخصصی اما من دلیل اون رو اینجوری که حالا به ذهنم میرسه میتونم فقط همین دو تا رو به شما بگم که باعث میشه کسب کارهای خانگی ایجاد بشن و شکل بگیرن اما کسب کارهای حرفه ای یا دباغاتی اون رشته حالا زیرآلات اگر قرار باشه کسی ایران یا ایجاد شده باشد به شدهده فقط با دانش آکار تجربه فقط میشه این, این رو مدیریتش کرد و البته با این اکتررم من بگم که خیدار و مخاط هم توی زمینه بسیار نقش بهفضایی داره <تصفح> اصلا تعبولی که در نوع تولید و تعرانی <تصفح> بهبل اومده همینطور روی کرد جدید مصرف کننده ها به استفاده از ایورالات با ترایه متفاوت عاملی هست برای جذب شدن این داستان و حال ما فکر میکنم همچین اتفاقی هم افتاده و حالا خوب یا بدش دیگه با مخاطرینه درسته. بله کاملا قابل مشاهده هستش و اینکه شما به عنوان کسی که در ساخت زیورآلات هستی میخواستم اگه میشه به خلاصه برای های ما بگی که مراحل ساخت یک گردنبند یا هر زیورآلاتی چی هستش از زمانی که در واقع حالا یا درخواست میشه از شما کاریو انجام بدین یا خودتون تصمیم میگیرید که چیزی رو تراحی کنین اه ببینید برقیل ساخت حالا من توی بیلان این رو میکنم برای شما مثال بزنم توی شرکت اولین بخش روند به به کار ما اینجوری هست که وقتی نام یا واجهی رو عنوان میکنن را مشتریان جا خود سیستم فروش ما بخشیت هيأت مدیره ما تصمیم میگیره نامی رو واژه ارشی تولید بکنه اولین گام که من به عنوان طراح این آثار یا این محصولات نام یا واژه رو کاملا ترجیح تعلیل می‌کنم از نظر شناسی از نظر شکل و فرم به اون نوشتات یا اون حرف اون از شما کلمه تو کاملا ترویج تعلیمش به رنگ و عطر اون کلمه رو کاملا با حس بکنم ببینم چطور میشه به بهترین نحو ممکن این رو طراحی کرد و اینجا کرد که مخاطب براش جذاب باشه و برای اون ماندگاری داشته باشه بنابر این حالا بعد از چالش چالشهایی که با خودم دارم و با ترتیب شدنش تراحی انجام میشه اصلا اینو اصلا میگم من خوشنویس نیستم اما به عبارتی خوشنویسی میکنم اون کار رو مرحله بعدی کار به دخش اجرایی ما به عبارتی منتقل میشه اونجا دیجیتال میشه بعد از اینکه من خطاتیش کردم یا به باید خوش کردم و از اون مرحله به بعد وارد بخش تولید تکیف فنو میشه اونجاست که بچه کارگاه ما به صور اون چهر و به واسطه مواد اولیه که حالا مد نظر هست مثل آلیاج دلان مثل یا نقره اون ته رو قرار میدن روی کار و اجراش میکنن بعد از اون هم ته پرداخت میشه یا به ساماندهی میشه برای احزیز تردنی مشتری و باید شما منتقل میشه حالا مثلا اون جردمنده ببخش به بخش فروش ما باید به مشتری بسته به دست مشتری میرسه توجیه کامل دادم مر. کامل کامل بود منم که نمیدونستم قشن متوجه شدم امیدوارم بایدوارم که شنونده ها هم کامل فهمیده باشن و در مورد فروش گفتی علی جان میخواستم ازت سوال بپرسم م. که میدونم شما به صورت فروش اینترنتی و آنلاین هستش سخت، ده ده. کار فروش اینترنتی به خصوص در ایران کار آسونی هست یا کار سختی اصلا هنوز جا افتاده برای مردم که به صورت اینترنتی خرید بکنن ببینید من جبه سوال شما رو تکان اینجوری میکنم بدم که بوچ اینترنتی با توجب بیاعتمادی که مصرفکنندهها به دلیل فروشگاههای مجازی که وجود داشته مد قبلا ما بود پاین لبته فروش اینترنتی دچار مشکل شده بود اما اخیرا خوشبختانه با حضور فروشگاه های داره و داره استاندارد این فروش اینترنتی داره تو ایران ی جورایی تقریبا باب میشه شکل میشه تبلیغات تلویزیونی که داره روی بحث فروش اینترنتی و های وقتی بر خرید آنلاین یا فروش آنلاین انجام میشه تو تلویزیون باعث میشه مخاطب عام ببینه اینها رو و براش جذاب بشه و با به اون اعتماد بکنه خوشبختانه حالا داره یه جورایی قدرت میگیره اما اخیراً قبلا اینجوری نبود قبلا متاسفانه بسیار بسیار مشتری تحت تاثیر منفی قرار میدادن یا مثلا پول سایبری شد حالا بعد جنسی که به مشتری میرسید رسید که بسیار پایین اجازه هستن جنس به دست مشتری نیمی رسید ولی خب خوشبختانه این یه تفاوتای در برشی خوب خب باعث و امیدواری و خوشحالی هستش این موضوع که شما دارین بهش می در واقع دارین در موردش صحبت میکنید ولی قرار دادن در به صورت آنلاین و در اینترنت یک مشکل دیگه هم به همراه داره و اونم اینه که در زمینه طراحی زیورالات ما حق کپی رایت در ایران نداریم و آیا تا از نظر کپی شدن کارها و ترهاتون دچار مشکل شدید یا نه؟ ببینید قانون کپی رایت به اون شکلی در خارج از هست در اینجا جاری نیست ما قانون حمایت از حقوق معلفان و مصنفان و هنرمندان رو در ایران داریم این قوانین متاسفانه بازدارنده نیستند یا به شکلی که باید از هنرمند دفاع بکنن خودشن ی یا بار متون بگم از اون شخصی که به عنوان خاطی و مجرم عملا داره سرقت هنری میکنه درست بازدارند نداره این قانون متاسفانه حالا نه تنها من تعداد به سیازی از همه مندان به که پر تو چایی مشکل هستن سهیقت ماندهی امروز یک شغل شده به عبارتی ایران و افراد بسیار تنها با جستجو کردن توی گوگل ما میکنن به استفاده از ترهای حالا هنرمندها و تایپ حالا تایپگرافی های ترها حالا هر چیزی عکس و حتی بعض افرادم با علم به این که میدونن این حرفا ثبت شدن این عمل غیرقانونی و مجرمانه رو انجام میدن و از اونم لذت میبرن خیلی جالب این مسئله <تصفح> تا حالا چند مورد هم از آثار من کپی شده که خوشبختانه یک مرادی قضایی مورد پیگیری قرار گرفت و دو موردش خوشبختانه هم جریمه گرفتیم و هم محاکمه شد اون شخصی که این کار انجام داده بود اما در کل به عمر معاش باید برای هنرمند و هنر ارزش قائل باشند و این مسئولیت با حرفهای های شکه روشن فکرانه ها و اخلاق اصلا میسر نمیشه و افراد جامعه و محسن کنند برای رشته آثار هنری و ایجاد شدن این آثار توی اصلا ترسته هنرمند با کسایی که صحیقت هنری میکنن برخوب برخورد برخوب بکنند و از اونها اصلا حمایت نکنند و از هنرمند ها حمایت کنند و الا داستان کاملا پیچیده میشه که متاسفانه الان پیچیده شده درسته بازم خوبه که فکر کنم خیلی از هنرمندها هم اطلاع ندارن که میتونن برن و به دنبال حقوقشون باشن این کم لطفی از طرف هنرمندها هم هست همین که شما میگید در واقع رفتید دادگاه و این مراحل شده همین باعث میشه که شاید این اتفاق کمتر در زمینه هنری بیفته اما خیلی از هنرمندها این کار رو انجام نمیدن متاسفانه و تنبلی میکنن شاید یه جوری یا حتی اطلاع ندارن و همین باعث میشه که در واقع دزدای هنری هم راحت تر این کار رو انجام بده اجازه بدید یک نکته رو اضافه کنم که حالا این شما. من علاوه بر کمکاری و تمبلی. یا تنبلی یا الهام ابطی نمی‌شم اینو ساده اشد عنوان بکنم من به ذهنم می رسه که این مسئله رو حتما بهش توجه بشه انجمن‌های حمایت کننده از هنرمندا حالا میشه مطرح می‌کنیم مثلا انجمن ایت. که وظیفهش حمایت از هنرمندی هست که از اون منجامانه اونم کمکاری میکنه ببینید ما پروسه شکایت کردن از بسید اون شخص خاطی تو کشورمون اینقدر طولانیه که اصلا کسی دنبالش نمیره خود خب این اشتباهه هنرمند سرمایه کشوره اثر هنری سرمایه کشوره و باعث میشه فضای اجتماعی زیباتر بشه حالا اگه قرار باشین این اثر تابله نقاشی باشه ریگوکلیت باشه یه نمیدونم حالا لباس باشه زیور باشه هر چیزی هستن این ها در حال یه جوری قدرتی ای ایز داشته باشه هنرمند که به سرعت به شکلاتش رسیدگی بشه و به نظر من, من انجامن هم مسئول هستند توی این مسئله درسته ممنون از نکته ای که بهش اشاره کردید و علی جان وقت ما داره به پایان میرسه. در آخر فقط میخوام هم ازتون تشکر کنم به خاطر وقتی که به ما دادید و همین که حرفی اگر در پایان دارید نکته ای که دوست دارید بگی حتما بگو و در مورد این که چطوری هم دوستان میتونن بیان و کارهای مخصوصا زیورالات شما رو ببینن و اگر بخوان خرید کنن به چه صورت هستش. ممنون میشم سایت رو براشون بگی آدرسش رو. بیشتر تا وبسایت رو باید به شما بگم. اولین وبسایت وبسایت افتستا هست که توی میگیرم اگه سعیش بکنیم که بکنید بکنیم. این جشواره وری آدرس وبسایت دلان دلان فاشن به fashion.com هست و اگر دوستانم دوست داشته باشن کار خود من رو ببینن میتونن به سایت www. BZR.com مراجعه بکنم و من خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم برای شناناتانتونم عرضی سربانی و شاری دارم ممنون از وقتی که به ما دادید و فقط یه نکته آخرش بگم تو رو خدای یه فکریم بخ... برای خریدهای خارج از کشور بکنید آقا من مشکل دارم با این سایت. من شما <تصفيق> بودم من نوشته بودم این رو بگم خب که من خیلی من داره من علاقمنده به انشاء پروژه دل اگر سازشکشان بخون کار ما رو بخران یه راه حل داره مون همین اینه که به عزیزانشون در ایران بگن برن تو وبسایت مخری کردن آنلاین باز همونو براشون ارسال کنن به خارج از کشور آقا این سخت یه راه آسونتر پیدا کنید <laughs> اما یه فکری این حتما اگر که یه به حال این بکنیم باعث خوشحالی ما میشه. من خودم شخصا با این مورد مشکل دارم اعلام می‌کنم اینجا. اما باز هم باز هم ازتون خیلی ممنونم از وقتی که به ما دادید. امیدوارم که برای شد. کارهای بعدی، موقعیت‌های بعدی و برای کارهای تازه جشنواره آفتا آفتاستاپ باز هم باتون با صحبت داشته باشیم. ممنون از شما. خدا مشکرم ممنون خدا نگهدارت من کجا کافه رادیو کافرادیو رادیو کافرادیو رادیو رادیو رادیو رادیو چی کافه رادیو